انسان تبانمند و نیرومند، انسان شجاو و قوی هشتون داره جلسات علمی فکری و اسلاحی سال 1400 سخنرانه مفتی عبدالرحمن عمرزهی موضوع آسیف شناسی خانواده ازاو ازاق نشده و اما خودش را کنترل می کند الحمدلله الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به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 ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَصَى أَنْتَكَرَهُ شَيْئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله الأظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارک على سیدنا ونبينا نبینا ومولانا محمد وعلی ل وصحبه اجمعین خدای عز وجل حضور من و شما را در این مكان پرنور در این جلسه نورانی در جهت رضایتش بپذیرند به گویندگان و شنوندگان اخلاص وال اللهیت عنایت بفرمایند از الله مطال می خواهیم که خدای از این نشست را سبب اصلاح و تذکیه این بنده ناچیز و سبب خیر همه من و شما بگردانند. الله را به این توفیق و این حضور سپاس گزار هستیم بنده ناچیز، به نوبه خودم رحلت جانسوز عالم جوان و ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله را خدمت همه شما عزیزان تسلیت ارز می کنم خدای عزوجل ادامه دهندگان راه علما را توفیق مزید عنایت بفرمایند کمال تشکر دارم از خدمت گزاران دینی و قرآنی این شهر قرآن پرور جناب حضرت مولانا عبدالواحد قلندرزهی جناب حافظ بزرگوار حافظ محمد اسحاق جناب مولانا عبدالرب و سایر عزیزانی که در این مجموعه مشغول به خدمتگزاری کلام الهی هستند و از اینکه این, این طلبای ناچیز را دعوت فرمودند سپاسگزار هستم موضوعی که سروران عزیز دستور داده بودند در رابطه با آن بنده مطالبی arz بکنم یک موضوع مهمی است و نیاز هر خانواده ای است بزرگواران و علمایی که توفیق دارند در مسیر حل و فصل اختلافات در این زمین خدماتی انجام می دهند و توفیقاتی دارند به خوبی حساسیت و اهمیت این مسئله را درک می کنن. سروران عزیز یکی از معزلاتی اجتماعی بزرگ ما که امروز جامعه ما متاسفانه با آن مواجه هست اختلافات خانوادگی هست اختلاف در میان زن و شوهر بیداد می کند جامعه امروز گرفتار این ناهنجاری و این اختلاف هست که متاسفانه تأثیر منفی آن بر فرزندان، بر نونهالان و کودکان عزیز وارد می شود و از همین بدوه حیات و زندگی کودکان ما را تحت فشار روحی و روانی قرار می دهد سفیدریشان و معتمدین و علمایی که عرض کردم در این زمین توفیقاتی دارند مواجه هستند با پرونده های بسیار نگران ای که واقعاً اگر در این زمینه چارهی اندیشیده نشود در این زمینه اگر تدابیری در این زمینه اگر راهکارهایی به کار بسته نشود بسیاری از پیونده های زندگی بسیاری از زندگی های نوپا نابود می شود این مسئله چنان مهم و حیاتی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در آخرین و جامع ترین خطبه خیش در حجت الودا با تأکید و اهمیت فراوان دست گذاشتند بر این مسئله متاسفانه امروز فضای بعضی از خانه ها فضای دعوا و درگیری است فضای ضرب و شتم هست فضای زد و کوب هست این چه تأثیری دارد بر روح و روان شوهر و زن چه تأثیری میگذارد بر این کودکان معصوم و متاسفانه این معزل و این تأثیر منفی از دروازه خانه عبور میکند و وارد جامعه و نسل آینده می شود پدر و مادر بنده با هم چه تعاملی داشتن چه برخوردی داشتن چه معاشرتی داشتن یقینا بدون از تردید کنون در صفحات ذهن بنده منقش است و نقش بسته است. الله اکبر زمانی که پدران و مادران صالح بودن زندگی و اخلاقشان بیالایش بود چه خاطرهای زیبایی در ذهن بنده و در ذهن شما عزیزان وجود دارد آنگاه که مادر عصبانی می شود و تمامی قدرتش که نیروی زبان است آن را به کار می بندد و به نوعی شوهر را مورد ملامت قرار می دهد و شوهر مردانه سکوت می کند شوهر عکس العمل نادرست نشان نمی دهد. شوهر تاج سکوت تاج متانت و تاج سنگینی را بر سر می گذارد این چه درسی است برای فرزند چه درس موثری است برای فرزند اما اکنون فرزندان من و شما چه درسی می گیرند از نحوه برخوردی که من و شما با همسرانمان داریم از نحوه برخوردی که همسران با شوهرانشان دارند به هر حال مخاطب مردان هستند و حاضرین در مجلس شما بزرگواران هستید عزیزان من دو توصیه را در نظر داشته باشیم الله اکبر حضرت حکیم الامت رحمه الله می فرماید. الله متعال مردان را سفارش می در مورد همسرانشان اگر امروز اگر امروز یک فرماندار به معلم پسرش در رابطه با پسرش که نزد او و در کلاس او تحصیل می کند سفارش کند آقا معلم فلانی پسر من هست هوایش را داشته باش اگر یک استاندار به فرماندار یک شهر سفارش کند در رابطه با یک همکارش در رابطه با یک کارمن یا این اینکه یک شخص سرمایهدار یک شخص سرمایهدار سفارش کند به شما که هوای فلانی را داشته باش انگاه چقدر ما به این سفارش بها می دهیم و چقدر اهمیت خواهیم داد و هوای اون شخص سفارش شده را چقدر خواهیم داشت. حضرت حکیم الامت رحمه الله می فرماید الله شما را در مورد همسرانتان سفارش می فرماید همسرانی که در خانه های شما اسیرند گویا همسری که جز از آه و ناله دیگر توانی ندارد همسری که جز زبان هیچ قدرتی دیگر ندارد وعاش روحن بالمعروف الله مطال ای را نازل فرمودند به نام سورة النسا شما سوره ای پیدا نمی در قرآن به نام سورة رجال اما ای را پیدا می کنید به نام سورة النسا یادگیری این سوره درک و فهم این سوره و عمل بر فرامین این سوره زندگی من و شما را می سازد جهت زندگی من و شما را تغییر می زندگی می شود یک حیات طیبه یک زندگی با صفا و زیبا عاشروهن روحن بالمعروف برخورد کنید معاشرت داشته باشید با همسرانتان تان بالمعروف به زیبایی با اخلاق شایسته خدای عزواجل قبر این مفسر کبیر را مشمول بهترین الطاف و رحمتایش بگردانند امام راضی رحمه الله امام راضی تفسیر بسیار زیبایی دارند در مورد بالمعروف و عاشروهن بالمعروف معاشرت کنید برخورد کنید با همسرانتان به معروف در تفسیر معروف دو نکته قابل توجه است عزیزان من زمانی که شما با همسرتان سخن میگویید لحن شما دوستانه باشد نه حاکمانه با همسر دوستانه سخن بگویید عاشقانه سخن بگویید نه حاکمانه او شریک و رفیق زندگی شماست نیاز دارد به لحن شیرین شما نیاز دارد به کلمات پر از مهر و محبت شما او شریک است رفیق است دوست است نیاز دارد که با لحن دوستانه باش حرف زد او محکوم شما که نیست متهم که نیست که با زبان حاکمانه صحبت کنید و نکته دوم در تفسیر بالمعروف این است که سخن همسر را بشنوید بی اتنا نباشید برای شنیدن سخن هر کس و ناکس من و شما فرصت داریم اما برای شنیدن سخنان همسر شنیدن درد دل همسر شنیدن انتقاد و پیشنهاد همسر شنیدن مشوره همسر چرا وقت داشته نباشیم در مسیر راه یکی از علمای بزرگوار جناب مون عبدالقادر عمر زهی مدرسه در لوم حقان ایران شهر حدیثی را خواندند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودند یک انسان هرچند آبد، عابد، زاهد، پارسا، متقی، عبادت گزار و شب زنده و تهجد گزار باشد اما اگر اخلاقش با همسرش اخلاق نادرستی است خشونت اخلاق خشونت زاییست حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال عبادت و زهد و تخوایی همچونین بنده ای را نمی پذیرند آگاه باشید ای آشغان مساجد آگ متوجه باشید ای دل دادگان به رکوع و سجده به دعا و نیایش بیدار باشیم ای حج گزاران بیدار باشیم ای عبادت گزاران ای روز داران تا زمانی که با اخلاق با همسران اخلاق زیبا اخلاق سبورانهی داشته نباشیم اعمال من و شما در بارگاه رابب العالمین هبا من بی ارزش خواهد بود آنچه که ایمان من و شما را به کمال میرساند و اعمال من و شما را الله مقبول میگرداند اخلاق زیباست که با اهل بیت خودمان داشته باشی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه زیبا میفرماید ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا عزیزان من بزرگترین هدیه الهی برای من و شما نعمت هدایت و ایمان هست جهت تقویت ایمان باید کوشید ایمان را تا دم مرگ باید سالم بود گاه وقتی فکر می کنیم و از عملکرد ما چنان برمی آید که ایمان ما چقدر مستقم است هر گونه جنایت را ارتکاب بکنیم باز ما مؤمن هستیم نه خیر عزیزان من اخلاق بد گناه و مأصیت، نابودی و تباهی ایمان است آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن این اکمل المؤمنین ایمانا کاملترین مؤمنان از لحاظ ایمانی الکسیست که احسن هم اخلاقا اخلاقش از همه ایمان آخلاق زیباتر باشد این اخلاق زیباست که منو و شما را سوق میدهد به سمت کمال ایمانی این اخلاق زیباست که ایمان من و شما را کامل می سروران عزیز و الطف هم کامل مؤمن از لحاظ ایمانی آن کسی است که نسبت به اهل خانواده اش ملاطفت و نرمی داشته باشد و داشته باشد بپذیریم و قبول کنیم عزیزان که بسیاری ها از ما در بیرون وجهی دیگر داریم عالم، حافظ قرآن، فرهنگ، فرهنگی، فرهیخته، دانشمند، آدم سالم، آدم سالم، بزرگوار، اما در واقع ظالم وقتی که اشک مظلومانه همسر از چشمانش سرازیر می شود و خودش را در مظلومیت می بیند چه انتظاری از رحمت الله داری؟ چه انتظاری داری که خدای وجل در دنیا و در آخرت دست تو را بگیرد در معرکه مشکلات زندگی الله پشت و پناه تو باشد مگر نمیدانی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که آه مظلوم برمی آید الله می من تو را یاری می کنم من به داد تو خواهم رسید ولو بعد حین گرچه بعد از مدتی هم باشد بنده میدانم سراغ دارم افرادی را که آه آه مظلومانه خانم و همسر زندگی او را به تباهی کشانیده مطمئن باشید عزیزان چوبی به سر ما چوبی بر سر ما کوبیده می شود نمیدانیم از کجا نمیدانیم نمیتوانیم شناسایی بکنیم اساس این مشکل اساس این غم و گرفتاری چیست برسیم عزیزان من به حقوق همسران که همسر همه را رها کرده پدر مادر برادر بستگان خانواده همه را رها کرده و خودش را سپرد تو کرده است این گونه بنگر امانت الهی در دست توست گرچه همسر سر منو توست اما بنده الله و کنیز پروردگار است و خداوند برای او حقوقی را بیان فرموده است حقوق را پایمال نکنیم سروران عزیز این مسئله چنان مهم است که حضرت رسول اکرم همه بخانی صلی الله علیه وسلم در خطبه حجت الودا بسیار تاکید فرمودند نسبت به حقوق همسران اشروهن بالمعروف این چه آیه زیبایی است تو موهن الله متعال میفرمایند در مواردی شاید قد و قواره خانم اخلاق خانم مرام همسر مورد پسند شما نباشد شاید در نگاه شما خانم زیبا رنگ نباشد خوش اخلاق نباشد الله میفرماید اجازه ندارید که بلا فاصله تصمیم گیری کنید برای جدائی تصمیم, تصمیم گیری کنید برای قط کردن این پیوند محکم زناشویی نه اگر غد و غواره خانم اخلاق و رفتار خانم مورد تایید و پسند شما نیست سبر کن سبوران زندگی را بسر کن زندگی ارزی است فان كرهتموهن حافظ بای را بخوانید وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعصی ان تكرهو شیعا این فرمان پروردگار است و قانون الهی گاه وقتی شما یک چیزی را می میبینید ناپسند میبینید گاه وقتی شما با یک چیزی انس نمیگیرید معنوس نمیشوید اما الله متعال در همان شیء برای شما خیر کثیر قرار داده است خیره ایزان تکرار بفرمایید خیره و یجعل الله فی خیر کثیره اینایه در رابطه با همسر همسران هست غد و غواره خانم رفتار و اخلاق خانم مورد پسند شما نیست صبر کن صبورانه روزت را در کنار او شب کن شبت را در کنار او روز کن حقوقش را ادا کن زندگی یک سفر مختصر و است. سفر زندگی را پایان بده مطمئن باش الله در این خانم خیر کثیر برای تو قرار داده حضرات مفسرین میفرمایند یک خیر کثیر این است خانم شما خوشگل نیست باش کنار بیا در روز قیامت الله متعال به تو ده هور انایت که یک هور همین خانم دنیای توست که او سیده همه هوره هاست از همه هوره ها زیباتر خواهد بود سی سال زندگی چهل سال زندگی 50 سال زندگی را با یک خانومی بساز با یک در کنار یک خانومی سپری کن که غد و غوارهش در نگاه تو مکروه ناپسنده اما در آخرت این خانم زیباترین همسر تو در بهشت برای آباد خواهد بود وقتی که مقایسه بکنی زیبایی این همسر دنیا را با به هورهای بهشتی بسیار تفاوت خواهی دید بسیار در بهشت هم چون این خانمی برای من و شما وجود ندارد این خیر کثیر از یه خیر کثیر نیست بله در بهشت به شما یه خانمی نصیب بشه که از همه حوره های بهشتی زیباتر باشد از همه زیباتر باشد و آباد در اختیار و در خدمت شما این خیر کثیر خانم شما مورد تایید شما نیست اما الله مطال به وسیله او شما را صاحب نسل میگرداند الله مطالب شما اولادی عطا می فرماین. این اولاد قررت اعیون شما می شود در دنیا و در آخرت این اولاد صالح و صالح می شود مفید برای شما خدمت گزار برای شما و مفید برای جامعه نام شما را می و نام شما را روشن می کند و جز باقیات و صالحات شما قرار می گیرد. یک فرزند صاحب نام و عزت فرزند صاحب عزت و سعادت از یک خانم بد اخلاق الله به شما عطا فرموده این خیر کثیر نیست و نکته دیگر که مفسرین میفرمایند انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله صابران به حساب اجر عطا میفرمایند به دو،, دو گروه اجره به غیر حساب، روزداران ماه مبارک رمزان و به صابران. عزیزان من جوانان عزیز. وقتی که خانم اخلاق خشونت زایی دارد با خشونت و تنتندی با شما برخورد میکند شما صبر میکنید هر روز صبر میکنید از خود شکیبایی نشان میدهید الله مطال هر روز مقام و درجه معنوی شما را ارتقا دهند امروز صبر کردید عکس الاول نشان ندادی در مقابل بیعتنائی و بداخلاقی همسر امروز مقام شما الله یک پله بالا رفت فردا یک پله بالاتر خواهد رفت پس فردا یک پله بالاتر هر روز زندگی شما روز قربت الله می شود و شما به الله نزدیک می اون داستان ابوالحسن خرقانی رحمه الله را خوانده اید شخصی آوازه و شهرت مقام و موقعیت معنوی ابوالحسن خرقانی رحمه الله را شنیده بود ایشان فضیافته بایزید بستامی بودند در میان هم اسران گوهر تابناک و بیبدیل بودند شخصی از منطقه آوازه این بزرگوار را شنید آزم سفر شد این بزرگوار را دیدار کند کس به فیضی داشته باشد به منزل ابوالحسن رحمه الله میرسد در میجند دخترکی در را باز میکند بفرمایید جناب شیخ را میخواهم دیدار کنم اجازه بدید که من از خانه بپرسم اینجا نیستند کجا هستند دخترک رفت داخل منزل به همسر شیخ گفت که مهمان آمده جویای احوال شیخ هست گفت چه شیخی من نمیدارم که مردم چه فکر میکنند مردم چه دیدند در وجود و زندگی این شیخ برو به این احمق بگو شیخ اینجا نیست شیخی در کار هم نیست این کسی که شما او را شیخ تصور میکنید یک آدم بیعرزشی است یک زندیق است یک گمراه است تمام وجود این مهمان تمام وجود این مهمان را تعجب فرا میگیرد غرق تعجب و حیرت ابوالحسن خرقانی و این وضعیت خانه و خانواده از دم در رفت برگردم بهتر این همه راه که آمدی یک دیداری هم داشته باش از نزدیک ماجرا را ببین از یک آقای پرسیدن شیخ کجا پیدا میشه؟ چند مدتی است رفته به جنگل. اگر از این راه بروی به جنگل حتی من پیداش میکنه. حرکت کردن. در جنگل مواجه شدن با یک صحنه ای، صحنه واقعی است یا یک رؤیاست خواب میبینم یا اینکه بیدارم؟ شخصی سوار است بر شیر دو طرف این شیر هیزم بسته. بار هیزم بر این شیر و یک مار تنومند هم مانند شلاق به دستشه با این می میتازد به این شیر خیلی تک از همان جا شیخ فرمودن ما بار گرگان کشیدیم که این گرگان چنان بار ما میکشند جای تعجب و نگرانی نیست خداوند به من خانم با برکتی فرموده خانم خوبی چه برکتی در این خانم دیدی چه خوبی در این خانم دیدی بله این است که شیر سوارم شیر سوارم و ها به دستم اینه وقتی که این خانم با بدترین اخلاق با من برخورد می کند یک ذرهایی برای من ارزش قائل نیست. من صبورانه میشنوم و کنار میآیم. هر روز صبر میکنم هر روز از بارگاه الله متعال اجر به غیر حساب دریافت میکنم هر روز ارتقای مقام پیدا میکنم هرگو هر،, هر روز با ربم من نزدیک میشوم و در میدان قربت الله با تمام سرعت حرکت میکنم به سوی رحمت الهی این خیر و برکت همان همسره تون اخلاق هست عزیزان من زندگی را بساسی صبر و گذشت زندگی را شیرین می کند و حق دادن به طرف حق بدی دروش شریف بخاری سخنان بنده طولانی شد اجازه بدید به یک سری مطالبی به صورت اختصار بپردازم که نیاز زندگی من و شما هستند عزیزان الله مطال به همه من و شما توفيق عمل عنایت بفرمایند عزیزان من دعوا و مشاجره طبیعی است هیچ خانه و خانواده ای از دعوا خالی نیست خدای نخواسته زمانی که صدای دعوا و مشاجره در منزل بلند می شود خون سردی را حفظ کنیم احساسات را کنترل کنیم خون سرد باشیم اگر آتش این مشاجره و دعوان شولورتر شد محیط دعوار را رها کن محیط خانه را ترک کن برو مغازه محل کار بهترین جا مسجد این بسیار کمک می کند خدای عزوجل ما را مورد الطاف و عنایاتش قرار بدد همه من و شما را گاه وقتی درد سر می شویم از این پرونده های طلاقی شوهر گریه میکنه همسر گریه میکنه فلانی و من عصبانی بودم با خدا من عصبانی بودم چرا التماس میکنند که گویا کلید حل این مشکل به دست عالم هست به دست یک کسی که توفیقاتی در بحث فتوا دارد فلانی رحم کن به این دختر من رحم کن به این پسر به این کودک یا الله اون اشکه ها چقدر درد آور هست. من عصبانی بودم و برادر من هیچ کسی در حالت عادی و عمومی با بگو با بخند خانمش را که طلاق نمیده کسی که خانمش را طلاق میده حتی من در نتیجه عصبانیت هست آن وقت خانه را ترک می کردی. محل دوار را ترک می کردی الله اکبر طبق تعبیر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پهلوان و, و شجاعان آن کسی است که خودش را کنترل کند عزیزان من یقین بدانید باور بفرمایید انسان توانمند و نیرومند انسان شجاع و قوی آن کسی است که توان انتقام دارد توان برخورد دارد توان نشان دادر غوی ترین اکس العمل را دارد اما خودش را کنترل می کند قدرتش را مهار میکند، و الله چون این بنده ای را بسیار دوست دارد در مورد مسائلی که مربوطن به فرزندان گاه وقتی اختلاف در میان زن و شوهر پیدا میشود، پدر یک نظری در رابطه با فرزند دارد مادر نظری دیگه داره پیشنهادی دیگه داره مسائل مربوط به فرزندان مایه جدال می شود در خانه عزیزان من پدر شخصیت مستقلی است مادر هم شخصیت مستقلی است لازم نیست که این هر دو شخصیت در همه مسائل هم نظر باشند. تفاوت نظر تفاوت فکر و اندیشه تفاوت سلیقه این طبیعی است بذارید فضا آرام بشه شما عصبانی هستید خانومتان عصبانی هست در حالات عصبانیت عزیزان من هرگز شما نمیتوانید همسر را توجیه کنید و نمیتوانید توجیه همسر را بپذیرید بذارید فضا آرام بشه چند ساعت بعد چند روز بعد وقتی تنها شدی با همسر دوستانه با منطق. هر فتر را بزن حرف او را بشنو اگر میخواید مسائل را حل کنید در فضای آرام خانم من که در رابطه با این پسر این دختر این نظر را دارم این دلیل منه توجیهش کنید توجیه او را بشنویده پذیرید یک مشکل بزرگی است که تعامل در میان کار و زندگی نیست عزیز از صبح که بیدار میشه دنبال کسب و کار و انجام امورات زندگی شب که برمیگرده سرش توی موبایل و به خواب میره این زن هم نیاز به گفتن داره، نیاز به شنیدن داره نیاز داره که شما یه قسمتی از وقت ترا در اختیاره این همسر قرار بده خداوند غریق رحمت بگردانند حضرت مولانا مفتی خالد دهواری رحمه الله را وقتی که توفیق تحصیل داشتیم در این العلوم گشت اگر اشتوا نکنم هر عصر سهشنبه حضرت یک کلاس اصلاحی برگزار می به یادم هست که یکی از مواعظ علمای هند را توضیح دادند در رابطه با خانواده و حقوق خانواده فرمودند گاه وقتی خانواده را به تفریح هم ببرید به سفر هم ببرید گاه وقتی تنها شما باشید با خانواده منهای همه مشاغل الان که این موبایل عزیزان گرچه محاسنی دارد اما مزراتش بسیار خطرناکه وقتی شما به منزل میایید مشغول موبایل هستید میخوابید با موبایل داد این خانم در میاد چه کسی نیازه های او را تأمین بکند چه کسی به درد دل های او گوش کند چه کسی حرف او را بشنود اینه که تعامل برقرار کنید در میان کار و در میان زندگی خانوادگی عزیزان من در بیرون از منزل شما با دوستان و همکاران و مردم در منزل شما با این آفت مزر و مهلک مبایل شما با مبایل که ازدواج نکردید با یک انسانی که حق دارد برگردن شما منشه بسیاری از اختلافات همین است عزیزان من وقت بدهید به همسرانتان به فرزندانتان و مسائل مالی هم یکی از اسباب اختلاف بین زن و شوهره اگر عزیزان من حقوق را رعایت کنید بهترین خرج کردن آن است که شما برای زن و فرزند خرج کنید هزینه کنید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لغمه را آماده می کنند، تنظیم می کنند و در دهان حضرت آیشت و صدیقه و ازواج می گذارند این است رهبر و رهنمای من شما حادی من شما این چه درس بدی است که یاد گرفتیم از کجا این درس را یاد گرفتیم؟ که زنزریل فلانی زنزلیله در درس تفسیر خدمت دوستانمان ارعرض کردیم به صورت یک شوخی که در, در این زمانه اگر آسایش و آرامش می خواهید زنزریل باشید بهتره باور بهفرمازیزان من زنزلیل باشیم بهتره در حدی که حقوق دیگران و قوانین شریعت پایمال نشود اینگونه زندگی کنید شما قاتل صد آدم باشید بیرون از منزل اما اگر در منزل همسر با شما خوب است شما آسایش دارید اگر بیرون از منزل شما شاه عالم باشید در منزل درگیر با خانو و خانواده باشید زندگی شما آتش است عزیزان من هیچ محل امن و آسایشی بهتر از محل خانواده و خانه نیست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: بعضی ها دوست دارند که حاکم باشند بر همسران، حکومت کنند، با گردن کلفتی و با غرور نمایی و تکبر نمایی زندگی کنند با همسر. من دوست ندارم این گونه باشم. از خودمان بفرسی ما سنی هستیم تابع و دلداده سنتیم آیا تا زندگی چند بار لغمه را آماده کردی در دهان همسر گذاشتی برادر سنی چقدر مشوره کردی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مهمترین امور زندگی حتی در برخی از مسائل جنگ و جهاد با همسران مشوره دارن نظر خواهی میکنند. شغادر ما نظر کردیم از همسه درود شریف بخانی واجان یک درودی با صدای بلند ختم بفرمایید و رسول الله و علی دوست دارم این صحنه تمرین شمشیرانی را ببینم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات زیبای مسجد مجاهدین اسلام شمشیر زنی و شمشیر رانی را تمریل می کنند یا رسول الله دوست دارم ببینم آیشه سرت را اینجا بگذار ام المؤمنین سر می بر شانه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم و از درون حجره تماشا می کنند این صحنه زیبا را تا زمانی که خود حضرت آیشه از تماشای این صحنه زیبای جهادی سیر نشدند حضرت همان طور دوستانه ایستاده بودند و سر مبارک ام بر شانه رسول الله است بنازم به, به این اخلاق بنازم به, به این انسان دوستی به این بها دادن عرض بنده این بود وقتی در رابطه با مسائل مالی اختلاف در میان زن و شوهر به وجود می آید شاید زن بدبین است که درآمد شما بیشتر است درآمد دارید اما کمتر به ما رسیدگی می کنید اگر یک خانم دارید وضعیت دقیق مالی را به خانم اعلان کنید خانم ماهیان این هست کسب و درامد من به این صورت حزینه می کنم شما درک بفرمایید اگر یک خانم دارید مسئله حل می شود اجازه ندید که کمبودی های زندگی مشکلات مالی باعث قطع شدن این پیوند زیبا بشود عزیزان. وقتی ندارید سعی و تلاش کنید این عبادت است. شما جهت تامین نیازه های زن و فرزند تلاش کنید شبانه روزانه الله به شما عجر میدهند و اگر در مواردی نتوانستید نیازه ها تامین کنید توجیه کنید همسر را با لحن زیبا با لحن دوستانه و گاه وقتی بعضی از افراد خانواده بر اعصاب شما راه میروند امکان دارد یکی از پسران شما این گونه باشه همسر شما این گونه باشه قبل از این که به منزل بیایید آمد آمدگیری داشته باشی الان من میرم منزل خانم اینگونه گونه برخورد خواهد کرد پسری که مشکل روان دارد اینگونه گونه برخورد خواهد کرد به آمدگیری وارد شو خودت را نصیحت کن سکوت بهترین خونسا کننده آتشه بهترین آتش نشان است سکوت و از عزیزان من چون گا وقتی انسان نمی تواند کسی دیگر را تغییر بده من و تو هر چند تلاش کنیم گا وقتی بعضی از اخلاقا به این حد حدت و شدت می که غیر قابل تغییرن من و تو انسان ضعیف نمی توانیم این اخلاق تند را تغییر بدیم خودمان را تغییر بدیم عزیزان من اجازه ندیم که فضای خانه فضای تشنج و فضای درگیری باشد یک مطلبی بی عرض می کنم با توجه به اینکه سخنان بنده بسیار طولانی شدند عذر می خواهم عزیزان. صبران عزیز یک زن همه چیز را تحمل میکنه. همه چیز را برداشت میکند و با همه چیز میسازد. اما اگر احساس کند که فکر شما جای دیگر مشغول هست. شما ارتباط نامشروعی دارید. هیچ زن سبوری در دنیا نمی‌تواند این را تحمل کند و اینجاست که واقعاً زندگی می شود آتش انسان هست انسان لغزش پیدا پیدا میکند انسان دوچار خطا می شود اگر واقعتا همسر بدبین است در واقع اینطور نیست پس با زد و کوب و تندی جوابش نده خانم فکر شما درست نیست شما سوء اتفاهم شدید من همچنین کسی نیست و اگر خدای نخسته انحراف کردیم عزیزان برگردیم دوستانه دارم خودم و به شما میگم بسیاری از همچنین پرونده ها را دیدیم عزیزان من با ناداری شما با تندی شما با همه مشکلات شما یه خانم میسازد اما جوان عزیز خانم شما اگر فرشته روی زمین هم باشد با این وضعیت شما به هیچ عنوان سازگار نخواهد شد خدا نیاورد آن روزی را که خیانتی انجام بگیرد و از همسر بو ببرد به این خیانت به این وفایی، به این ارتباط نامشروع بلا فاصل غذیه را جمع کن کنترل کن از کارشناسانی نظر بگیر اجازه نده که این آتش چوب کبرید به یک آتش مهیب و ویران کننده تبدیل شود فرصت نیست من بیشتر توضیح بدم یک اشاره کردم این خیلی مهم است عزیزان من و آخرین عرض بنده این است که ما فاصله داریم از سنت و سیره زیبای رسول الله همه بخانی صلی الله علیه سلم کودک شما گریه می کند همسر مشغول شستن لباس است در آشپزخانه خانه مشغول داد نزن سر و صدا نکن این نوکر من و تو که نیست همکاری کن بچه را بردار بچه را آرام کن در انجام امور منزل گرچه وظیفه منو شما نیست البته از فقی مسئله جوری دیگه هست از لحاظ شعری و فقی زن وظیفه نداره برای من شما غذا بپذر لباس بشوید اما در فرهنگ من و شما اینا وظیفه هستند و باید با هم کنار بیاد. عزیزان من حضرت رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم یک روزی منزل را جارو میزنند یک روزی گوسفند را میدوشند لباس را پیون میزنند کارهای منزل را انجام می دهند ای سنی ای کسی که تابع سنت میدانی خودت را این زنزلیلی نیست گا وقتی جارو بزن علما بلخص این کار را حتما بکنند همه باید همه باید خصوصا علما برادران تبلیغی تا دیگران از ما الگو برداری کنند چیزی باست ایک مفتی منزل را جارو بزنه یک عالم، یک امیر تبلیغی این کار را بکنه آنگاه این هم سرپنی برد که این شوهر دل داده به من دل داده به زندگی، دل داده به منزل بسیاری از کدورت ها برطرف می شوند در منزل فرعون نباشیم عزیزان من ارز کردم که اخلاق من و شما برخورد من و شما حاکمانه نباشد دوستانه باشد خدای عزیز و جل به همه من و شما توفیق پیروی و تأثیر از جناب رسول الله صلى الله عليه و سلم را عنایت بفرماین شما عزیزان قابل تقدیر و تحسین هستید فرهنگیان عزیز این شهر واقعا شهر قرآن هست و شما پرورش دهندگانه حاملان و حافظان قرآن هستید چه فضای زیبایی در این شهر به چشمی خورد خداوند به علمای این شهر به مردم این شهر به فرهنگیان این شهر توفیق مزید اتا بفرمایم جا دارد که تشکر کنم از برادر عزیزم آقای حاجی اصغر سورانی که همیشه وقتی در این منطقه حضوری پیدا می کنیم ایشان میزبان ما هستند زحمت میکشند و ایشان این توفه را ما از دارلوم دیوبند به دست آوردیم جناب مونقلن در زهی عزیز اینم از الطاف عجیب است. فاصله ای ایران شهر تا مهرستان فاصله چندانی نیست متولد شدیم در ایران شهر زندگی کردیم در ایران شهر اینجا گذشت آقای حاجی اصغر سورانی هم اینجا محل زندگیش همدیگه را ندیدیم در دارلوم زیبای دیوبند با هم آشنا شدیم و این پیوند از آنجا محکم شد الله جل جلال به این عزیز بهترین اجر و پاداش را عنایت بفرماید از اینکه سخنان بنده واقعا طولانی شدند و جسارتی شد در محظر علما بلاخره سرور بسیار عزیز و گران قدر شخصیتی که بنده از چشمم ایشان را بیشتر دوست دارم حضرت مولانا سیدزاده بزرگوار و جناب مولانا زوبرجان عزیز که در محضر این بزرگواران واقعا جسارت کردم همه شما را به الله می سفارم جدن عذرخاهی می کنم از تصدی وقت